تو همچو صبحی و من شم خلوت سهرم تبسو کن و جان بین که چون همی سپرم چونین که در دل من داغ زلف سرکش توست و نفش زار شود تربتم چو در گذرم آستان مرادت گشادم در چشم که یک نظر فکنی خود سکندی از نظرم چه شکر گویمتی خیلی غم افاکله که روز بی کسی آخر نمی رویز سرم قلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار قطره ببارد چو درد دل شمورم به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن کسین کرشمه نبیند که من همینگرم به خاک حافظ اگر یار بگذارد چون باد ز شوق در دل آن تنگ ناک کفن بدارد